فصل چهارم من در بون متولد شدم و اینجا خیلی ها را می شناسم ها آشنایان، همشاگردی های سابق پدر و مادرم اینجا زندگی می کنند و برادرم لئو که توسط تسوپفنر کاتولیک شده است در اینجا الهیات می خاند. پدر و مادرم را لازم است ببینم حداقل برای اینکه مسائل مالی را حل فصل کنم شاید هم این کار را به یک وکیل دعاوی بابذار کنم در این باره هنوز تصمی پس از مرگ خواهرم هریته پدر و مادرم دیگر به عنوان پدر و مادر برایم وجود ندارند. 8 سال است که هنریته مرده. وقتی جنگ تمام شد او شانزده ساله و دختری زیبا، بور و بهترین تنیس باز این دوروبر بود. آن روزها دخترهای جوان مجبور بودند برای خدمت در گروههایی که برای مقاومت ضد هوایی تشکیل شده بود، داوطلب شوند. هنریته هم خودش را در ماه فوریه سال 1945 معرفی کرد. همه چیز چنان سریع و بی‌دردسر اتفاق افتاد که من اصلاً آن را درک نکردم. از مدرسه می آمدم و داشتم از خیابان میگذرشتم که دیدم هنریته در تراموایی نشسته است که به طرف بن حرکت میکرد. برایم دست کان داد و خندید. من هم خندیدم. کوله پشتی بر پشت، کلاه سرمه‌ای رنگ قشنگی بر سر و یک پالتوی کلفت آبی رنگ با یقه پوستی بر تن داشت. من هنریته را هیچ با کلاه ندیده بودم. او همیشه اصرار داشت که کلاه نگذارد. کلاه قیافش را به کلی عوض کرده بود و مانند یک زن جوان به نظر می آمد من گمان کردم به پیکنیک می روید هرچند موقع پیکنیک نبود اما آن موقع از مدرسه ها هر کاری بر می آمد وقتی که ما قررش توپ های دشمن را می شنیدیم توی پناکا سعی می کردند به ما تناسب ریاضی یاد بدهند معلممان من برول همراه ما آنطور که خودش می گفت سرود های ملی و مذهبی می خوند. او این اسمها را برای سرودهایی مثل وطنی پر از شکوه و جلال یا در شرق سرخی صبحگاه را میبینی بهخار میپرد شبها وقتی که گاهی برای نیم ساعت قررش توپ ها صدای پای اسیران ایتالیایی و اسیران جنگی روسی و زنهای اسیر و سروازان آلمانی به گوش می‌رسید. در مدرسه برای من توضیح دادند که چرا دیگر ایتالیایی ها متحد ما نیستند و حالا عنوان اسیر به کاروا داشته می‌شوند، ولی من تا به امروز معنی آن را نفهمیدم. تمام شب مارش می رفتند هیچ کس درست نمیدانست چه خبر است هنریت غیافهی داشت که واقعا آدم خیال می کرد می خواهد همراه شاگردان مدرسه به گردش برود از آنها همه کار برمیآمد آمد گاهی که میان حمله های هوایی در کلاس درس نشسته بودیم صدای شلی که گلوله شنیده می و وقتی ترسان به سوی پنجره نگاه می کردیم برول معلم می پرسید آیا می چه صدایی کم کم اینها سربازان فراری بودند که در جنگل تیرباران میشدند برول می گفت این سرنوشت در انتظار تمام کسانی خواهد بود که برای دفاع از خاک مقدس آلمان در مقابل این یانکیهای جهود تفره بروند چندی پیش برول را دیدم حالا پیر و فرسوده شده است و با موهای سفیدش در یک آکادمی تعلیم و تربیت به عنوان استاد خدمت میکند او را مردی با سابقه سیاسی دویرانه نمی‌دانم چون وارد حزب نازی نشده بود. دستم را برای تراموایی که هنریته در آن نشسته بود یک بار دیگر از پشت تکان دادم و از میان پارک به خانه رفتم. پدر و مادرم با لئو سر میز ناهار نشسته بودند. آن روز ناهار سوپ و به عنوان غذای اصلی سیب زمینی پخته با سس داشتیم و دسر هم یک سیب برای هر کدام بود. بعد از غذا از مادرم پرسیدم که هنریته برای پیکنی به کجا رفته است. او کمی خندید و گفت پیکنیک؟ او به بن رفت که خودش را به یک گروه مقاومت ضد هوایی معرفی کند بچه جان سیبت را اینقدر کلاف پوست نکن ببین من چطور پوست میکنم پوست های سیب را از بشخاب من برداشت آنها را با چاقو تراشید و حاصل صرف جویش را در دهان گذاشت من به پدرم نگاه کردم او به بشخابش خیره شده بود و حرفی نزد لئو هم ساکت بود ولی وقتی دوباره به مادرم نگاه کردم با صدای لطیفش گفت تو باید بفهمی که هر یک از ما باید به سهم خود فداکاری کند و یانکی های جهود رو از خاک مقدس آلمان بیرون بریزد. نگاهی به من انداخت. وحشت زده شدم. بعد با همان نگاه به شد و من تصور کردم که میخواهد ما را برای بیرون ریختن یانکی های جهود به جبهه بفرستد. گفت خاک مقدس آلمان و آنها تا دل آیفل پیش آمده اند. دلم میخواست بخندم ولی زدم زیر گریه چاقو را روی میز انداختم و به طرف اتاقم دویدم میترسیدم و میدانستم چرا میترسم ولی نمیتوانستم بیانش کنم و وقتی به پوست سیپای لعنتی فکر میکردم میخواستم یقهم را پاره کنم به خاک مقدس آلمان که در باغچه با برفی کثیف پوشیده شده بود نگاهی انداختم و از آنجا به رودخانه راین و سپس نگاهم را از بالای بیت‌های مجنون به کوه هفت قله گرداندم تمام این جریان به نظرم احمقانه آمد چند تا از این یانکی‌های جهود را دیده بودم آنها را با یک کامیون از ونوسبرگ به اردوگاهی در می می‌بردند جوان و وحشت زده بودند به نظر می رسید از سرما یخ زده اند اگر می توانستم تصوری از جهودها داشته باشم این تصور بیشتر به ایتالیایی ها میخورد که یخ زده تر از آمریکایی ها به نظر میآددن و خسته تر از آن بودند که از چیزی بترسند به صندلی کنار تخت خوابم لگدی زدم و وقتی نیافتاد لگدی محکمتر صندلی روی میز چپه شد و شیشه روی آن را خرد کرد هنریت با کلاه سرمه یا کول پشتی. او هرگز باز نگشت و ما هنوز هم نمیدانیم او را کجا چال کردند یک نفر پس از جنگ پیش ما آمد و خبر داد که نزدیکی های لورکوزن کشته شده است وقتی فکر می کنم که از دو نسل قبل تا به حال قسمت اعظم سهام معادن زغالسنگ در انحصار خانواده ماست این دلسوزی برای خاک مقدس آلمان برایم مضحک جلوه می کند از هفتاد سال پیش به این طرف خانواده شنیر با بلدوزرهاشان این خاک مقدس را که باید تحمل زیادی داشته باشد زیر و رو کرده با نفع آن جیبهایشان را پر می روستاها جنگل ها و قصر ها یکی پس از دیگری در مقابل این ماشین های غول پیکر به لرز و مانند دیوارهای اریها فرو چند روز بعد فهمیدم چه کسی اصطلاح یانکی های جهود را مطرح کرده است هربرت کالیک چهارده ساله رهبر سازمان جوانان که مادرم باغمان را با سخاوت در اختیارش گذاشته بود تا ما در آن راه و رسم استفاده از بازوکارا یاد بگیریم لئو برادر هشت سالم هم عضو گروه بود او را بازوکایی بردوش دیدم که از کنار زمین تنیس میگذشت خیافش چنان جدی بود که فقط کودکان همسن سن و سال او میتوانند چنین جدی باشند او را نگه داشتم و پرسیدم چه کار میکنی؟ با لحنی بسیار جدی گفت میخواهم تبدیل به یک گرگ درنده شوم تو نمیخواهی؟ گفتم چرا؟ و با هم از کنار زمین تنیس گذشتیم و به طرف محل تیراندازی رفتیم در آنجا هربرت کالیک برای بچه ها داستان بچهای قهرمان را تعریف می کرد که در سن ده سالگی مدال سریبه آهنین درجه یک گرفته بود این بچه آنطور که کالیک می‌گفت در شلزین با بازوکا سه که روسی را نابود کرده بود وقتی یکی از بچه‌ها پرسید اسم این قهرمان چه بود من فوری گفتم روح کوهستان رنگ از رخسار هربرت کالیک پرید و فریاد زد خراب کار کثیف من هم یک مشت خاک از زمین برداشتم و به صورتش پاشیدم به جز لئو که گوشه ایستاده بود و گریه می کرد همه به سرم ریختند. از ترس توی صورت هربرت زدم خوک نازی. این کلمه را جایی دیده بودم. به گمانم را روی نردی در محل تقاطع جاده با خط آهن نوشته بودن. درست معنای را نمیدانستم ولی احساس کردم که کاربردش همین جاست. هربرت کالیک به زد و خرد خاتمه داد. حالتی رسمی به خود گرفت و مرا بازداشت کرد و در انباری که در آن تمرین تیراندازی کردیم زندانی کرد. تا او برول معلم یک عضو حزب و پدر و مادرم را جمع کند از خشم گریه میکردم. به سیبل های گیری لگت می زدم و به بچه‌هایی که بیرون ایستاده و موازه به من بودند خوک های نازی می گفتم. پس از یک ساعت مرا برای بازپرسی به اتاق نشیمن بردند برول معلم سر از پا نمی شناخ و مرتب می گفت با چنگ و دندان با چنگ و دندان باید این علف هرز را نابود کرد و من تا به امروز هم نفهمیدم که مقصودش نابودی جسمی بود یا روحی باید در آینده نزدیک به آدرس دانشکده تعلیم و تربیت نامهی بنویسم و از او خواهش کنم برای روشن شدن حقایق تاریخی توضیح لازم را بدهد لوونیش مردی که از حزب آمده بود و معاون تشکیلات محل بود آدم عاقلی به نظر می آمد و مرتب می گفت توجه داشته باشید که این بچه هنوز یازده سالش تمام نشده. و چون رفتارش برایم تا حدی آرامش بخش بود حتی جواب سوالاتش را هم دادم میخواست بداند این کلمه رو از کجا آوردم گفتم آن را روی نرده ی راه در خیابان آنا برگر خاندم. گفت کسی آن را به تو نگفته؟ مقصودم این است که آن را از زبان کسی نشنیده گفتم نه پدرم گفت تفلی معنی حرفش را نمیداند و دستش را روی شانم گذاشت برول نگاهی خشمناک به پدرم انداخت و از سپس نگاه وحشت زدهش را به سمت کالیک گرداند. اینطور به نظر می آمد که این حرکت پدرم برایش معنای همدردی مشکوکی داشت. مادرم با صدای لطیف احمقانش گریان گفت: او نمیداند چه کار می کند و من خودم قیدش را می زدم گفتم: خب بزن. همه اینها در اتاق نشیمن خانه من، با مبلهای لاک الکل زده مجلل و تشریفاتش اتفاق میافتاد. روی بوفه چوب بلوت بزرگ پر از یادگارهای شکار پدر بزرگ بود و طرف دیگر کتابخانه سنگینی بود که روی درهایش به جای شیشه آینه کار گذاشته بودند. همه جا پر از گلدانها و اشیاء سنگین و اشرافی بود. من صدای توپخانه را از آیفل که 20 کیلومتر بیشتر با ما فاصله نداشت میشنیدم. هربرت کالیک با موی بور، رنگ پریده و قیافه بیروح نقش داد را بازی میکرد. و مدام با پشت دستش روی قفصه می زد و می باید سخت گیری کرد معنا معنی ندارد مرا محکوم کردند که با نظارت هربرت در باغ تونلی زیر زمینی بکنم بعد از ظهر آره همان روز طبق سنت خانوادگی شنیرها مشغول زیر رو کردن خاک مقدس آلمان شدم تنها اختلافی که کارم با سنت خانوادگی داشت این بود که آنها با دست خودشان زمین را زیر رو نمیکردند اما من مجبور بودم با دست این کار را بکنم تونل را از زیر باغچه پر از گل روز محبوب پدر بازارگ می کندم زیر پای مجسمه مرمرین آپولو که از روی آپولوی قصر پلودر پلودره ساخته شده بود بی منتظر لحظه بودم که مجسمه بر اثر حمت و کوشش بی من سرنگون شود. اما آرزویم به همت پسرکی کمکی به نام گیارگ محقق شد او در نتیجه یک اشتباه زامن نارنجکی را که در دست داشت کشید و خودش و مجسمی آپولو را تک تک کرد تفسیر هربرد کالی که از این واقع بسیار موجز بود جای شکرش باقیست که گیورگ یتیم بود.